جلسه پنج و هشتون از رساله اصداد جفری اسلام فلد عمل یعنی تتصف برو فلد عمل ملا عبرت فلد ایتظام و عدمه این نهایت نظریه مستنگه مخالفت ایتظامیه مانه این ازد خلافت به تفسیری که خودشون دارن که تفسیری کردن ایتظام رو به هفته و تنگ یعنی همون احکامی که به ما باسه میشه اعتقاد قدبی بین احکام داشته باشیم ایشون برمود اعتقاد قدبی لازم نیست مهمه که انسان به اینها عمل میکنه و یک کنو هم یک دنیل جواز به بزرین اخسر و خبه لو و وجب الانتظام فده او به کان به عهد احمد معین و تکلیف و منقه بیان اگه بگیم در موارد دوران هم بین وجوب و حرمت یا دو حکم الزامی و امثال اینها اگر التضام به عهد احمد معین باشه جمانگه مفروض ما موارد علم که دو فرد داره یا سه فرد و اطراف معین مشخصه و محدده اگر به عهده مای معیین واقعا با قلب و من غیر بیان ولاینت از ما بهی عهد عهدی قائمی که حتما باید به وجود یا به حرمت یا به یک طرف از اطراف علم جمالی ما باید قلبی پیدا کنیم این دلیل نظر محکنه به عهده من بین به این اطراف فهازانایون که <تصف> این هم میگه با این خطاب واقعی مجمر برزن اینم میگه با این خطاب واقعی مجمر قابل <سؤال> اثبات نیست ما اشتر برن داریم و افرادش مرتد بین اطرافیه اما این نمیتونیم بگیم حتما انتظام به عهده مای مخیر بین این اطراف لازمه بد با من خطاب متمنن آقا یه خطاب دومه میخواد بیاد به یه به یکی از اطراف علم تخییر لازمه که در نظریات محقق نائی این تعبیرات شیخ انصاری تبدیل شد به نظریه یه کرد که همجا استفاده میکنه یعنی قوام فقه نائی به ارکان یکیش مطمئه همچه همیشه هر کجا قافیه تن قائم میشه به متنمه لذا خیلی از اموری که مشروع قائل به استحاله میشن نا از اونها رها میشه با این نظریه متنمه موجه علیه میشه یعنی اگه میاد مشکل رو حل میکنم آیا میشه در خود امر ما قصد قربت رو کنیم خوب مشروع میگن نمیشه آیا میشه قصد امتصال امر رو اخذ بکنیم مشروع میگن نمیشه و خیلی از محصولات که لازم میاد در حیطه فقی و بسودی اینها رو ناینی با نظریه متمم جعلش حل میکنه و این را از شیخ انساری رفتیه که از موالدشه فلاوت در من خطاب متمم آخر ازا نظر یه متمم و جعل ناینی رو وقت بذاری تحقیق کنید اگر طلبه ها به این موانی مشرف نباشن فیاد خصوصشون به درد نیمه خود یعنی ما نهایتش نداریم قوام فرخ نایی به چیه شون یه راه گریزی هم میشه داره. که مشروع اینو نداره خود شیخ خمساری هم که داره میگه عملا ملتکت نمیشه قائل ولی ملتکت نمیشه اعتضاف فرمی تر میمونه محفظ نایی قائله به مطمیم میشه و میخواد بهش عمل بکنه احضام دو دوتا میشه شیخ خنساری در مقام سبوت داره میگیره اثباتا اعتراض به متمنم مضیعت نداره لذا اگر کسی میخواد مشرف باشه بر مبانی اسیل فقهی معاسیم مثل نهایی نیاز این نظریات رو بررسی کنه چی میخواد بگوه این رو اصول مزفر خیلی میاره در حصول مزفر این دیدن که ناینی همیشه یک راه گوریزی در مقابل مشروع داره و هیچ استحالهی برای نایینی دیگه باقی نمیمونه یعنی تمام مشروع گرفتار و یک استحالهی میشن توقف میکنن ناینی نردبانی داره به اون رها میشه و میره به اون نظریه متممون جهدیش این وزیگ گرفته شیخ انصاری. مواردش در زنسایی و مکاسه افتا حدود 20 سه هست یعنی 20 مورد خود شیخ انسار اینا رو میگیدی که شنه علاقه دلهم این خطاب ناخر یه خطاب دوباره میخواست حالا فرق به نظر یه ناینی با شیخ انسار ایچیه شیخ انسار این رو تصدور فقط میکنه میگه باید یه خطاب باشه ولی آیا هست یا نیست قاعده به اینکه نیست و نمیشه نمی تونیم قائل بشیم میگی یک دلیلی داریم اومده عنوان متضمن مطیع مشکلات ما رو حل میکنه ولی ناینی قائل میشه به اینکه هم امکان ثبتی داره، تصور ثبتی داره و هم وجود خارجی اثباتی داره ما خیلی از ادله رو میتونه متضمن مطیع برای ادله اولیه بگیریم لذا این رو از ناینی نمیپذیرند و اگر مشکلات در پهنایینی پیش میاد، یکیش متمم الجهد ایشون یه <تصفح> نرمبانی هم میشه میذاره که این رو به عن هدف فقی نمیرسونه لذا مخالفت میشه در نوع مواردی که هم میکنه به متمم الجهد به مخالفت با فتاهای فنی مشهور علیکل حال باید پیگیری کنید از کتابهای متأخرین از محقق ناینی پیدا کنید ده تا بیس تا از نظریاتی که اومدن تشکیل کردن نظری نایین رو که یکی از مهمترینش همون کلمات قدمات که هم در اجبر و تغییرات هم در تغییرات که برای خودش هست اومده این رو نظریات بیان میکنه و فیل جمله هم به مطمئن موجه ولو در خیلی از موارد مناقشی میکنه ولی که فیل جمعه مثل اول کل حال نظری متمم یه نظریه یه برای رها شدن از خیلی از محصولات سبوتی که برای مشهور پیش میاد ایشون میگه ما میتونیم با بشید به این که به عهده من مخیف واجبه یه خود دلیل نمیگه ولی مطمئه من میشه و اشتار نده فلاق و من خطاب مطمئه من, من آخر ابلی او یا هر بگه یا نفت. این تصور سبوتیه فقط که شیخ میگه ولی آیا وجود اثباتی هم داره محقق ناینی نا میگه داره شیخ میگه نداره بس این نشدنیه یعنی نمیتونیم تمام استحاله ها و محضورات با یک نظریه مطمئن مجعلی کنیم حضا عمده ترین که بر نظریه مطمئن وارده اینه که صرف تصوره وجود خارجی نداره ما تصور میکنیم که یک دلیلی میاد و مشکل رو حل میکنه. در متعلق امر آیا میشه قصد امتصال قصد قربت رو احس کنیم مشهور میگن نمیشه نا اینی میشه میشی سینا کنید خوبه و برای اشتاقیم تام به کلمات شیخنساری و نظریات ای که بوده الان خیلی از موارد آدم خیال میکنه چرا نایینی مخالفت کرد با مشهور چرا مشهور چیزی گفتن شون بخاد متممن جل یعنی هفتاد درسدش بخاد نظریه بنابر فتوا عوض میشه مشهور میرسن به یک بنبست توقف میکنم، فتوا میدن احتیاط میکنن ایشون فتوا میده در مقابل احتیاط مشهور با استناد به قاعده نظریه متممن جعل که قاعده پس یک ذهنیتی برای نایینی و تمام طلبه ای و فقارت به زهنیت. چیزی نیست نوعی یه ذهنیت اینطوری داره نمیشه ازش بگیری نمیشه منفکش کنی نمیشه متقاعد کنی که عمل نکنه نه دریه ایه, ایه. ازنه در دریه در باب معاریف معاریف رزجانی اونا که مشهورن نیاز به توصیر و اینها ندارن به شخص معروفیه معروف به خوبی یا معروف به بدی آن این در رجال دنباله این نمیگردیم که چی گفتن و چرا گفتن به نظریه یه ذهنیتیه و خب غیر و معبوله. غیر معبوله ایشون یعنی اشکال مصنف به اینکه که خدا من خطاب ناخر نبلی نه نقلی نبلی این نظریه مطمئن مجرد شیخ انساری رستش کرده یا قبولش کرده ظاهرا که میخواد بگه تصور سبوتی نداره چون فرموده و هوا و معبول معبول نیست اصلا. و هوا قیل و معبول یعنی اصلا نمیشه تصور کرد که یه خطاب دوم بیاد مشکل ما را حل نشونه مانه لا دلیل علیه اثباتا اثباتم هم دلیل نداریم خطاب دوم نداریم چهاره بناباشه یه روایات رو بگه یه روایاتی به بفرسته بگی من اونهایی قبلا گفته بودم یه تحتیمه می اینا رو میخوام بگم این طور چیزم نداریم و حوقت غیر معقول سبوتن مع نه لا دلیل علیه اثباتن و به تعبیل دوم اینه که این هم از نظر اصولی ثابته نظری مطمئن موجه هم از نظر فقری لا دلیل علیه فقریه غیرمعبور اصولی هم اعتباط نده و دیگه اکی هم آتش به جمله قائل میشه به این که میشه انسان از نظر سبوتی تصور کنه میگه از نظر اثباتی هستند نمیشه اعتقاد پیدا کنه به یک نظریه شبیه نظری مطمئن منسی علیه نایی لعنالقل از منها ظرفت ها به این مفروض و اونو توسلی چرا میگه غیر معقوله یک خطاب دوم بیاد بگه شما وجوب بهش داشته باشید چرا غیر معقوله صفاتی که میگه فرض ما اینه که نداء در واجبات توسلی است ما در تعبدیاتی بحث نمیکنیم ما محل نداءمون اولش هم گفتین توسلیات یعنی تحقق این کار در خودش مهمه که وقت بشه به چه نیتی مهم نیست مهم اینه که عتق بشه به چی نیتی مهم نیست لذا توسلی محل نظاست وقتی توسلی محل نظاست ما بیایم بگیم خطاب دومی بیاد بگه شما ملتظم به این باید باشید نه چه لزومی داره لزا هایی که قایل میشن به اینکه وجوب التظام تخکیری داشته باشه اونها از محل فرض خارج شدن و بر خلاف فرض حرف میزنن فرض ما واجبات توسدی لزا یا موافقت واجبه یا واجب نیست اصل محت بحثش واجبات توسدی است یقینا به اقل طلاب بگی میگه واجب نیست ه هیچ بحثی رو ندیدن نشته واجب توسلی که چیز خاصی نداره مهم اینه که این لباس پاک باشه حالا عادل بیاد این رو بشوره به قصد قربت یا باز بندازه تو آب و نجاستش ظاهل میشه چه فرقی داره واجب توسلی نه این غرض نوشته در این نسخه های کنگره که بدون تحقیق تحریرا مدانه ای نسخ بدل می گیرسان ان الفرض یعنی محل, محل لأن الفرد من حوزه خطاب الاول از مفروز کو نمود ان مضمون به این وضعه این اتفق که در بعضی از هواشی مثل هاشی رحمت الله اینها رو به این نحو توضیح مید لذا فرض ما اینه که توسلیه توسلی باشه غلط چی میشه غلط اینه که به وجه وضعه اتفق حاصل بشه التزام میخواد چیم لان قرد من همینها از خطابت اولی. المفروض که اونه توسلی وسور و مضمون خارجاً که عیل از هند تفهم هر طور یک فوق میو بین تزانان لازمه که این تمثیلی که مشروط بر وجوب موافقت انتظامی آوردن این اصلا درست نیست ما در واجبات توسلی بحث از التزام نداریم ولی چه اینطوری تفسیر تفسیر فنگی برای مواقعات التضامیه که ما یک حکم ظاهری بر خلاف دو طرفیم اشماری بدیم نه که اعتقاد فنگی اعتقاد قلبی در نواجبات واسوری که نمیخواد پس تفسیر مشهور نسبت به مواقعات التضامیه غیر فنی حساب میشه موافقت مخالفت از میگه یعنی ما یک حکم ظاهری سالسی رو بر خلاف دو طرف خواهد بشیم آیا می کنیم؟ نمی کنیم؟ اشکالی نزده وقواه ها سلون من دون ثانوی تخیلی یعنی حصول مضمون در خارج. چون یک فیض یا ترک دیگه وقتی هم داره مدار فیض و ترک در در دوران هم بین وجود و حرمت ما نمیتونیم قاعده به تکلیف باشیم در موارد دوران هم بین وجوب و فعل یعنی فیلتر تکلیف ما نداری. نهایتش وضع ثابته ورز تکلیف نمیشه باشیم یا فیلی یا ترگیه وقتی علاقه کل تبدیل شخص یا فایلی یا تارگیر تکلیف معنی ندار حصول مضمونهی خارجن به ای وشین انتفق و هوا حاصلون من دون خطاب سانمی تخییر لذا ما تماما جرنه نمیخواییم بلکه قیل معبوله قیل متصوره و قیل موجوده در مقام اصلا و یکون خطاب یعنی خطاب سانمی تنبن للحاصل یعنی متماما جرنه ما تنب حاصله و هوا مقاما و مفروض اینه که احکام اعتباری هم خواز قوانین عقلیه تکلیمی است یعنی اگه چیزی محال باشه در اعتباریات هم محال تبقیه نظریهی مشروع بر خلاف نظریهی ساعد علامه تبا در حاشیه کفایه و خیلیه نباه که حتما آقایی میکنی میخوانم در اصول نوع داشته باشن یکی از کتاب که باید باشن معموس داشن حاشیه علامه و تحجیب من از این حوزه هاست چرا از استقبال نمیکنن نمی از این حاشیه هر حاشیه مطبعه غیر از حاشیه امنا یعنی سطر به سطرش نو آوریه ولی اینقدر قفلت از یک حاشیه اینقدر قوی و این نهایت محوضه یک نفره که عقیقیات رو غیر از اعتباریات بدونن با تمام عقیقی که داره اونو قاطع اصول نمی کنه. ولی ماها هنر میدونیم که در اصول بیان مطالب فلسفی بگیم این باید محنوز باشید تا واقع بشید <تصفح> لب مطالبش که خیلی مطالب حتی یک نفر من ندیدم به این نظر یا تمسک کن اینی هاشیه اندامه خایینتر از سایر هاشیه هست چرا این میشه حجوری داره یکیش محاصر اعلام ما معاصره با عبدالعومن نظریات معاصرین همیشه محضوبه بمونه تا دیمیست سال بعد انشاءت استفاده کنن بگن در فلان نسخین تو اومده در فلان رو. ولی الان استفاده نمیکنن کنن خارج از جده هست میشه و یکه اون رو خطاب حالا که من خودم و زمازم شنیدم و یک گونه فتا حوضه ها اشخاصی که طرف فقه میرن فلاسفه رو میکن فلاسفه فقها ها رو میکن نباید نبایی اینطور باشه و علامه جامعه جامعه فقه و حکمت نمیشه بگه علامه توادبای فقیه نبوده در قومه فقیه نبوده ولی مرزالی اینطوری بیرن تاثر خودش جامعه این عن ان عنوان اینه که متّئی ابرخطاب التحییلی الزانوی این نمای متّئی منه المكلف التأبُد با آهد الحکمی یا به منه التأبُد اونایی نسخه‌ای تکیه مکان داره ما داریم لا مجرد حصول مضمون احد الخطابین الذي هو حاصل خارجا علی ای حالن فینحسر دفق نذن به عدم الدلیل شخص بیاد بگه نه ما ایکه مده خطاب تخی ثانو شدم فتم خطاب ثانوی تخیل بیاد برا موافقت التظامیه رو واجب بکنه این درحالک تعبد باش یعنی از محل خارج بشه دیگه بگه نه اگه گفته محل نظر ترسلیات هم میگیره اگه اینطوری باشه او دلیل میخواد یه دلیلی میخواد که ما در این موارد که هم در این بحث میکنیم محل نظار ما خارج از ترسلیات تعبدیات رو هم میگیره اون دلیل میخواد من حالا فرط هم حال این خوب آقای ما باعثه کنید دیگه خاصی نداره و اما دلیل مجوب اتضام به ما جوابه النبی صلی الله علیه و آله طلاحی اثبت الا الانتضام و به این مکم الواقعی علامه و علیه لل الانتضام به اهده ما تخدیرا او تأیینا این اون که دلیل عام اعتبادیه از مراتب ایمان اون که به مدارس فقهی فرقی ما نهده ولیکن <تصفيق> نزاهت من جماعت من الازحاب اطلاق قول قوله بلمنه عن رجوع الى حکم قدر معدم قونهی حکمت امام بلما مطلبا من کردن از وجوب حکم سالس گفتن اگه دوران هم بین وجوب و یا باید قائل به وجوب بشی یا قال به حلمت بشی ما نمیتونیم قائل به اباقه بشیم. هر دو رو بذارین کنار. نه این طرف نه اون طرف یه طرف سالسی رو بگی مطلب ها من کردن مطلب ها یعنی شما مخالفت عملی در خارج بشه چه سرده مخالفت عملی نشه مطلقا گفتن ممنون و علیه بنو و عدم جواز الفصل به قول سالز فی ما قول مر کون الفصله فیه ترهند قول خوب قبیه فقه انجمادی قدمایی بود قایل بودن به اینجا احداث قول ثالث نماید همیشه باید یا این قول قبول کنی یا قول شیخ یا قول سندار یکی از این دوتا بودی باشه لذا فقه ما رو 500-600 سال عقب نگهد این نظریاتی و از این موقع میان میشه ما هم فیانی کنیم خوبه ولی در رکود مطلب تا اینکه یک گشایشی حاصل بشه بعد از شیخ توسی تا زمان محقق همقضا صاحب فرخ ما همونطور موند و همین نظریات اون هم خاطر محقق هلی رو گفتن شیخ توسی ثانی یعنی تا زمان قرن هفتم چیزی نمود همه تا به نظریات شیخ توسی بودم و این سال فرخ ما همینطور موند احداث قول سادس نموند بشه از اجما نوی تعدی کنیم تخطی نبود و ابن زهره قنیه می نمیسه قنیه پر از مسائل اجماعی همش شه اجماعیه از این اختلاف چیه کسی هم از سوال کنه بگیر اجماعیین هم اختلاف چیه نه هم ضربه قیل من المعاصرین یعنی صاحب جواهر محطب در معالی معالم قوانین نراغه در مناهج و خیلی ها که معاصر شیخنسایی بودن و اسادیدش سر و واحد من المعاصرین فی ما ازقتر اصلان از ترخیصیان المؤمنان حکمین یعنم به مخالفت احد اهمال الواقع به جواز به کلیه ما شدم که دو اصل ترخیصی در اطراف جاری میشه. چه شکالي داره نیست جریان صول محذول نداره ما در اطراف علم اجمالی شدن به اینکه اصل میتونیم جاری کنیم اصلهای ترخیص فیما یعلم به مخالفت احدهما للواقع با اینکه علم داریم یکی از اینها مخالف با, با, با, با, با ولی ولی می میتونیم اصل جاری بکنیم تنها محذول رو چه میدونستن اینا مخالفت عملیه مخالفت عملیه پیش بیاد نمیشه مخالفت عملیه پیش نیاد نداره اجرای اصول جز محرمات نیست یکی از محرمات در ساله اینه که اصول در اطراف جاری بشونه اصول رو در اطراف جاری کنه چه اشکالی داری قضا باید شدن به اینکه اصول در اطراف فی نفس جاری میشه منتها اگر مستلزم مخالفت عملی یه باشه نمیشه یعنی روح حرف غیر واحد منت معاصلین همینه که تنها معذور رو مخالفت عملیه می‌دونه که در جزوه نوشته این همون تعارض مستدعی دوام منجزیت علم اجمالی به تعارض اصول در اطراف تعارض یعنی چی یعنی اگر اصول جاری کنیم مستلزم مخالفت عملیه میشه اگر مستلزم مخالفت عملی باشه اصول در اطراف جاری نمی‌شه و ایندا نداره و قاسم بعضهم حالا سر و هر واحد من الماثری گفتن اصول در اطراف جاری میشه و نگفتن در شبهات حکمیه در شبهات موضوعیه این چیزی نیچیدی ندارن علالقاعده در شبهات موضوعیه دارن این حرفها رو میزنن ولی قاس هم و بعض هم. یعنی صاحب فصول صاحب فصول قیاس کرده اجرای اصول متنافی با حکم معلوم به رو به اجرای اصول در شبهات موضوعیه گفته چطور در شبهات موضوعیه جاری میشه در شبهات حکمی هم اشکال هیچ مانعی نداره حالا یا مصنف مخالف این نظریه یا نیست مخالف اصل نظریه ایسایت حسول نیست که اصول در شبهات حکمیه جاری بشه در اون یکی نشه اینا رو قاید نیست در بگه در میشه. و تنها محضور رو همون لزوم مخالفت عملیه میدونه و چه شبهه حکمیه باشه جاری میشه موضوعیه باشه جاری میشه ولی به قیاس سارف اصول ایران گرفته پس به اصل مطلبش ایران نگرفته که بیاد بگه اصول در شبهه حکمیه جاری نمیشه شما چرا داریم؟ میگه نه هیچه شبهه نداره اصول در شبهات حکمی هم مثل موضوعی جاری میشه برامای اصل تعمیم و قیاسش اشکال نداره ولی قیاس یک شبه به شبه دیگه از یه جهتی دیگه امتلاب محضوره محذورش اینه که ایشون فرموده فرق است بین جریان حصول در شبهات حکمی با شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه اصول در اطراف جاری نمیشه اخری تنافی پیدا میکنه با اون حکم معلوم بدهجوان ما علم اجمالی به یک حکم الزامی داریم یه مسئله ترخیصی در همه اطراف جای بکنیم که مخالفت میشه مخالفت عملیه حساب میشه به این نشدنیه مخالفت عملیه که تنها محذوره لازم میاد بجا نمیشه ولی در شبهات موضوعیه اینطور نیست در شبهات موضوعیه ما شبهه موضوعیه داریم و این اصول میاد موضوع مشکوک رو از تحت موضوعات احکامت لیولیه خارج میکنه آیا ارقای زوجیتی بین اینها هست یا نیست از عدم ارقای زوجیتی لذا حرمت نظرین ها دیگه موارد رو نمیگیره لذا اصول ترخیصی در شبهات موضوعیه حکومت داره بر ادله اولیه احکامت موضوع ما مشترک بوده بین زوجیت و اجنبیت اصل میگه اصل عدم الغه زوجیت وقتی اینطوری بگه این از تحت موضوع ادله خارج میشه به زوجیت سابقه پس اصول ترخیصیه مخرج مجرای اصول، ولی اصول حکمیه اینطور نیست هیچن سالی تفسیل شده بین اصول حکمیه و اصول موضوعیه اصول موضوعیه در اطلاق اجمالی جاری میشه ولی اصول حکمیه جاری نمیشه این فرق که بله خب ما یک حکم معلوم لد داریم دیگه یا وجوب یا حرمت بیا بگیم اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت نمیشه مخالف میشه با اون حکم معلوم لد این شاخ به شاق میشه با این حکم معلوم بل یه حکم معلوم بل داشتیم و من اینو با اصول داریم میکن میکنم آره داریم میشه بله همین نفکش. ولی در حق شبهات موضوعی اینطور نیست آیا این زوجیت داری یا نداره؟ نداری؟ عدد زوجیت قضا حرمت نظر این مورد نمیگیر حرمت نگاه بجنبیه و امثال این ها دیگه نمیگیره و ساید عدلی احکام حالا به مثال های متحده این ها رو همه نوشتیم دیگه از بیرون نگیم مطلب مهمی که نیاز به تحقیق داره بله در همین یا اگر موضوع رو وارد ما به هر دو وارد نمی‌شیم ولی کلی ما به ادمار می‌دونیم هست همین اشتباهی واسه رو کردن وارده لذا این بحث چون طولانیه ادامه و این مبانی ولی مقدمهی شیخ انصاری از نظر خودش قابل به هست و بعدش ما موضوعی و حکمی اینطوری فرق و خیلی هم مانو و کلامی داره که اصول موضوعیه حاکمه بر ادله اولیه احکام اینو خیلهم تکرار کرد در بحث براءت هم میاده و هم یه نظریه خاصی مال اصول موضوعیه حاکمه بر ادله اولیه احکام خیلی خیلیام مثل نائبینا ملتظم شدن به این نظریه منتها همین ایراد رو و دو تا ایراد دیگه برش وارد فرق نیست ما در موارده که علم داریم به یک حکمه علا نهر اجمال حالا چه در شبه ها موضوعیه چه در شما ها طور میگه چطور میدونم نفشش کن حصول ترسیتیه چطور داری جاوری میشه این طولانه میشه در این پرصفه کم نمیشه تن بگشتن ای داره و اون مقدمه خیلی مفیده ده. اونو بگیم که این مقدمه که میخواهم بگم, بگم قابل اثب قابل دفاع هم هست و خیلی نظریات هم برش مترنتبه و شاید ملخصی باشه از تعریفی که برای شبهات ها برا ترسید سید سریع در شبهات. ها که ما این را بدیم و احکامشو بدونیم نیازیم ممتنه و ممتنه متضمن تفسیر مختصری از شبهات چارگانه حالا شبه موضوعیه و شبه حکمیه اینطوری مفتحه و مشکور مستاغ یرون موضوعیه برمیگردونن و مفتح و حکمیه و در حکمیه به یک حکمه در موضوعی قاعده یک حکم دو هستند هستن و همیشه تفصیل ازشون بین دوتا شبه این دو میزنه و مشکلات فقهی تمام، به به حال خودش باقی میمونه یاد شکارشون نیاز به یک تفسیر نو داره تفسیر نو قابل اثبات قبلا هم از برده داد مطالبش دو بردنم اثبات میشه با اونی که شباهات حکمیه در یک تفسیر خیلی مختصر شباهاتی مرتبط در کام تکیف شدیه باشی تکیف از درم شاره میاد یعنی شعاره تکالیف رو میتونه بیاده او برمانه بیدونه تکلیف بیاره. اون چیزی که دارم داریم بحث میکنیم از تکالیف از شماعات رو همین تکالیف خمس. یا هشتانه فرم نداریم تا باشه هشتا باشه ششتا باشه شماعی حکمیه یعنی شماعی منطبط به احنام تکالیفیه باشه اگر کسی این زابیه یکی رو داشته باشه خیلی زود مسندت میشه به اون پردوی و مسایلی مسائلی منفرنگ. وقت میگن شغهه با که میگن که به وجود و برمت و جواز برگرده. نبیه چیز دیگه. به سه هفت بر برده همین هشتا، چیشتا، هشتا. علا خلاف همیزا دیگه. موضوعیه موضوعی شغه در احکام روزیه. یعنی هر حکم وزی که مشتبه باشه شبهه موضوعی است شک ما در ادالت ولایت وکالت بکارت همین هم شبهه موضوعی است چرا همین اکان وزیدی هست صحت حد خساب همشون یعنی در شبهه موضوعیه چرا چون شبهه در حکم وزیدیه حکم وضعی موضوع احکام تشریفی میشه یعنی اگه این صحیح باشی این معامل تصرف درش میشه ما نمیتون که جواز تصرف بشیم قبل از اینکه اثبات بشه صحتش هردش پس این هم موضوع هم شبه موضوعی هم شبه موضوعی شبه هم هست یعنی شبیه به اون احکام وضعیه چرا میگن احکام وضعیه چون موضوعیت داره بره هم. در موضوع احکام لذا همین نظریه رو میشه از کلمات شیخ هنساری انسان اینطوری برداشت کنه که قائل به انتظاییت که شده شاید مرادش هم میگه به انتظاییت یعنی که مشغول از کلمات شیخ برداشت کردن اون خیلی اشغال برش وارد میشه احکام وضعیه یعنی احکامی که در رتبه موضوع احکام تکلیف این دوتا خیلی معنی نداره، خیلی معنی درش نیست شاید خیلی از کلمات کنون اینها بر میاد از کلمات آغازی از کلمات محمد سانی اینا بر میاد که شبهات موضوعی همون شعبه در احکام است یعنی خیلی انتقال سریع باشه انتقال سریع به اینکه شبه موضوعیه شبه در حکم وزید حکم وزید برای چی میخواییم؟ برای اینکه نهایتش یک جوازی حرمتی بزرگوه برش من را تکنه موضوعیت داره منطقه ها میمونه شبهه مخکومیه با شبهه مستانهیه و این خیلی دقیقه این تحریفش که چه تحریف میدونه؟ تحریف مشور خودشون دارم بگن حواشی معاله از سلطان از آن. دیگران دارن شبهه موضوعیه موضوع وضعه احکان وضعی هم وضعیه چرا جنا احکام وضعیه خب شارح همه احکام خودش وضع کرده وضع به معنا نیست احکام وضعیه احکامی که در رتبه موضوع احکامند و اینو غزوینی در حاشیه معالم داره به تواریخ اثبات میگم باب اثبات دیگه فرما احکام که اثبات و ای اینطوری دارم تعلیل میکنم که همون باشی قبلن نکته بودن خیلی فرقی نداره ما مثلا کلمات استفاده کردیم چیز خاصی نیست حالا من شرط چیزی این باشه یا دارم که این از اون نجاست هر نه نذ که نجاستی که شما موضوعی است نه نه این با یکی از مصادیق اونها هست یعنی یعنی به عنوان 11 آره دیگه شوهه موضوعی هستن همین میگم اینکه اونها شاره ای حل می مشکل حل کردن ما که ماموشو حل همونی که قبلن واسه هم قابل قبلن گزارش تقدیمش میکنه ولی حالا اگه حال همه شک دیگه اجازه رو نمی ولی شوباه برای شو شو شو. تو تعریف شما نه، تقریبش می‌کنه. مقدّماً می‌گه برای من مهم است. تعریفش می‌کنه. تو ذهن هست، مقابله‌ای گفتیم چیزی که اشاره موفق بگه. چون شوبه حکمیه، این فقط شاره باید بگه. ولی اگه چیزی باشه که اشاره نداره شوبه موجودیشه. این یه تفسیر عامه که همه شوباهات رو می‌گیره. ولی دقیقتر از اون، قابل اثبات اولش شبهه مفهومیه با شبهه مستاغهی نیمونه شبهه مفهومیه شبهه در انامینه همین عنوان و ذاتی میگید شبهات مفهومیه همون شبهات عنوانی و شبهه مستاغهی شبهه در ذاته این مقدمه برای این از که این قسمت از مطمی که حسن نفتره بیاده با مقدمه میشه جمع کرد بین نظریه مشهور و نظریه غیر مشهور یا نمیشه جمع کرد این وقتی میگم شبهه بستاغیه می یه ما در شبهه بستاغیه ما چی میگردم این آقا این شخص بستاغ زید واجب یه اکلام هست یعنی میشه اگر ما تونستیم تقریر کنیم اثبات کنیم شبهه بستاغیه روی ذات همیشه وارد میشه ذات مهمه که شبه نستاغیه شده نه عنوان و اگر در شبه مفهومیه تونستیم اینو پردید کنیم که عنوان مهمه همین که این شخص بگم از سیدن کافیه لازم نیست فارسان به یک سیدی که ادعا که سیده یه خونه ای دادن مرود 15 ملیون جمع کردیم یه خونه ی شد شدون بعد این واسطه طلبه هاییی بردی از موارد خلل ایجاک میشه در ذهنشون خوب این زن داره بچه داره خیلی از ها باجک در کار بود اومده شغلی جرده این سه یه من ده خدا رو برد بعدن این منفر سه یه یعنی زهر به حالی احتیاط داره. خودش داره که سیدن کافیه چه لزومی داره ما بیاریم حتمه و تو بیاریم شناسان پدر سازمان ثبت بریم و بریم احوال بریم و ببینیم سیده ترسیمی داریم خیلی مهم این که تشخیص بدیم احکام همیشه رو عناوین میده یعنی شبه محکومیه یا شبه مستاغیه شبه این مستاقیه یعنی رو ذاتی همیش اکتم زیدم شبه این مستاقیه یعنی ذات زید ما کاری به علمش به تقواش به ادالتش نداریم ذات طلب هم همه برا شهره نه علمشون نه ادالتشون و نه چیز دیگه ذاتش این ذات طلب هست یعنی در صدقات هم همینطور روی عناوین میره. واسه میگنیم فقیره یا خودش میگه من فقیرم یا من تشخیص میدم فقیره کافی. اگر من کسی رو تشخیص دادم که فقیره بهش صدم میدم بعدن این کشان رو که شامل نبوده. بدم ازش بگیرم یا نه لازم نیست. وزومی نداره ما میگم آقا نداره این پول شما باید به ما برگردم و خیلی اتفاق میکنه. خیلی اتفاق میفته که خاتمی ما در این که در روزو می کنیم واقعه تو به از سال شیستیم چی میخوان انجام میدیم اینم از صدقاتلیف و براه مراناقی همین که من موقعی که صدق دادم این گفت برایدن کافی بعدن روزو نداره مثل آغازی عراقی نشید آغازی آراناقی میگن دافعش قدی بود جاذبه نداشته شکتن همه اینتون در پرون مردم رو این ناینی در روشت میکنه شما موندید بعد قبول نمیکرده یعنی اخلاقی داشته همه ترک میشنن حتی این در هواشی فوائلن دیدید به ناینی حرف میزنه به مقدر نازمی حرف میزنه و مسخره میکنه او یعنی در کتاباش هم باستاب داره حالا چطور در تغییرات؟ و باقاید اومده این طور نوشته کاش اینا نبود ولی آقا دافعش اشترلیه به طباط رو شده گفتن یه نفری از اون تنها شخصی که از شما داره تبدیل میکنه نه اینه عالم ممکنه هست. حاج علی و این نفر این بره خرج مخارجت می مونه اینه که داره خردی شما رو میده و اداره می این منتظم شد که عمل مانه این. این یه نفر داقا نفره بعد یه نفت داشته مجردت می شده به حرم علمی تو را به یه نفت خیلی احترام میکنه عوضی عراق مثل برکمالله و طبع پر الله و همسانی خیلی اون طرفی که با عوضی عراقی بوده گفته بود که چقدر شما این شخص احترام کرده کی بود گفتود بگه حاضینی نبود نه اشتباهی بریشته به طرف گفتود بگه اینجا درست اومده گفتود حالا مارو گم شد ببینید این طوریه باید فرس بگیرم اعتراح میرم به جرده فرس ما اینا رو پوری ویدی شخص داریم بعد ایمان شما موقع فرقی نمید دفترانیه. و به کمرات اتفاق می افته. مهم مبنای شماست کاری به مواصلی نداری نداریم. این شما چه اهمیتی پیدا میکنه نسبت به فقرا عنوان رو مهم میدونه یا ذات رو مهم میدونه. خیلی مهمه یا در مسافلت ها، یا در وطن و نفقه و خیلی از در احرام شماست. به یک تفسیر خیلی مختصری ما این چهار شبهر رو اینطوری گفتیم در این مقدمه و گفتیم قابل تبریب و قابل اثباته بیشین اثبات یاد در شبهه مفهومیه و مستقلی اصلا شبهه نداره یعنی اون یقینا قابل اثبات چیزی برخور خورد نداره شبهات مفاهیمی همیشه در مواردی که و عناوین رفته باشه شبهات مستقلی هم, هم میتونه همیشه در شبهات مستقلی ذات محمد بدان میگن همسو که به عام در شبهه مستقلی جایز نیست مشهود میه یعنی به خاطر همینه زاد مهمه تمسک به آمین تمسک به عنوان عمومی آم نمی این مهم بوده در آمین چون نیست عنوان مهمه مگر اینجا عام استیابی باشه ولی در شبه حکمی هم باز مناقشه نداره این نمت اشکال و نظام در شبه موضوعی یعنی شبه هات رو ما باید تعریف کردیم به احکام وزن این یه مقدار اشکال و نظار و داره که فرض انشاءالا تفسیدن بحث میکنه حالا این به جمله اینایی که داریم میدین بگردید شاید مواقع نسیم پیدا بشه و مجموع از این مکاسی دارد می کنید دنبال فتحاوای خودتون باشید نظر خودتون چی میشه؟ تو هم مثلا من موافقت به تیزامیار ما تمامش کردیم نظر شما چیه؟ اگر یک طبعه به نظریه نرسیده خسرانه الان تو دانشگاه ها تو دبیرستان ها این این فرمول که هر روز در شیمی در مسلس ها میکنن این فرمول تداخلی با فرمول دیگه نمی این یاد می بعد بعد دومی رو یاد میگیرن. می گیرن ولی ماهانی تو نیست ما همه رو بیزنیم نیمونه هر مسئله که داره تحق میشه به نظر نهایی خودتون برسید اینو به صورتی بر منحاج، بر تحری بر وسایل، بر مقاصده نمیسید. که در افتر افتر این نظر سایل میشه. شما دو سه سال دیگه مفیع اعظم علا از حقید. من یادم نبود. کیاد شمایه ندارد؟ می‌تونه